بیستم. برای هر پروژه ای به دقت برنامه ریزی کنید. امروز هر کاری که می در واقع به نوعی یک پروژه است. پروژه به صورت کاری شامل چند فعالیت تعریف میشه پروژه کاری که احتیاج به قدمهای متعدد داره که از ابتدا تا انتها کامل بشه. از این دیدگاه شما در تمام دوران کاریتون یک مدیر پروژه هستید. یکی از یافته های ما اینه که موفقیتتون در زندگی، درآمدتون و قابلیت ترفیعتون تا حد زیادی بستگی به تواناییتون در کامل کردن پروژه ها و یا کارهای شامل چند فعالیتی داره. خوشبختانه با چند راهنمایی ساده میتونی در این زمینه خبره بشید. یادتون باشه که مهمترین کلمه در موفقیت وضوحه. برای شروع هر پروژه، نتیجه نهایی ایده‌آل رو در حالتی که از هر نظر عالی باشه تعریف کنید. بعد تک تک گام های پروژه رو فهرست کنید. هر چیز کوچکی که برای رسیدن از ابتدا تا انتهای پروژه باید انجام بشه. بعد فهرست رو بر اساس اولویت و توالی مرتب کنید. اول چه کاری باید انجام بشه؟ بعد چه کاری باید انجام بشه؟ چه کارهایی میتونن همزمان انجام بشن؟ بعد برای هر بخش پروژه مسئولیت واگذار کنید و دقیقا مشخص کنید که چه کسی باید چه کاری بکنه و اون کار رو تا چه زمانی تمام کنه. یک برنامه پروژه بدون مسئولیت های واگذار شده و مهلت‌های مشخص فقط یک گفتگوی کاریست و به نتیجه مشخصی نمیرسه. بلاخره این که اگر پروژه مهمه اون رو به دقت تحت نظر داشته باشید. مطمئن بشید همه چیز در مسیر درست پیش میره. برای خودتون به خاطر تمام کردن سر موعد یا زودتر از موعد کارهای بزرگ وجه کسب کنید. هیچ وقت به امید شانس نباشید. هیچ وقت فرض نکنید که همه چیز درست پیش میره. توقعاتتون رو بازبینی کنید. همیشه بپرسید چه چیزی ممکنه به هم بریزه. از بین همه چیزهایی که ممکنه به هم بریزه، بدترین چیز ممکن کدومه؟ بعد مطمئن بشید که این اتفاق نمیفته. به پروژه نگاه کنید و بپرسید عنصر کلیدی یا حیاتی ترین بخش این پروژه چیه؟ چه چیزی میتونه مانع انجام به موقع این عنصر کلیدی بشه؟ فرمول قبل به یاد بیارید. برنامه‌ریزی صحیح از قبل جلوی عملکرد ضعیف رو میگیره. تواناییتون در برنامه‌ریزی سنجیده و دقیق پروژه‌هاتون از قبل میتونه به چشم چشمگیری کارایی‌تون رو افزایش بده.